می شاولان غیر از نظری مشتری سهیلی برشنبندگان صاحب دل و دوستداران سخنشناس بزم شاعران به مهر و انایت شما امروز هم در بزم ما شامهای فروزان شعر و عدب به روشنگری خواهند پرداخت شاعران گرانمایی ما آقایان عبالغاسم حالت عبدالله الفت و بیژن ترقی هستند نوای گرم گلپایگانی و پنجه شیرین و شورانگیز فرهنگ شریف هم بر شور سخن شاعران خواهد افزود آقایان رضائیان و امیر نوری هم اشعار شاعران را بیان خواهند کرد. تهیه کننده برنامه هم آقای عبدالحسین فهیم هستند. خب حالا آقای حالت نوبت سرکار که یا با شعری یا با خاطره ای و نقل مطلبی بزم شاعران امروز رو شروع بفرمایید. عرض میشد که یه دو تا خاطره بود که اگر اجازه بفرمایید الان فورا یادم افتاد عرض بکنم. یکیش می میشد که این که عرض کردم فوری یادم افتاد برای اینکه الان دست کشیدم به سرام دیدم که موهای سرم خیلی بلند شده. اینم نگاه کردن باقای الفت منه یاد انداخت. یه هم هست. هرشه چند سال پیش نزدیک منزل ما اگه سلمانی بود که این خیلی پر بود از اول که آدم زیر تیغش مینشست تا وقتی که کارش تموم می شد دونده حرف می زد راجب هر موضوعی هم اظهار لهیه می کرد مثل اینکه همه کاره بود متخصص علم اجتماع بود روانشناس بود سیاست مدار بود متخصص بمب به اتومی هیتروژنی بود خلاصه اینطور که از حرفاش طرفش برمیاماد میسین که در همه فن استاد بود جز در کار خودش که اصلاح سر صورت بود. همیشه‌ام بعد از اصلاح اصرار می‌کرد که یه شعری براش بنویسم. یه شب رفتم اونجا خیلی هم عجله داشتم. پیش گفتم که من در یه جا دعوت دارم. یه جا دعوت دارم که خیلی هم زود باید دارم اگه در ظرف ده دقیقه سر منو اصلاح کنین شعری که مدت‌هاست می‌خوام برات بسازم اینو می‌سازم بهت میگم. اینم خیلی سر شوق اومدم دست به کار شد وقتی خونه رفتن زنم نگاهی به سرم کرد و لبخندی زد و گفت عجب این سلمونی سرش رو زده بروری ناز شید هم بهش بده من فهمیدم که این دستگل به آبداد آقای سالمون رفتم جلو آینه نگاه کردم دیدم بله خیلی مهمونی که رفتیم تمام مهمون ما رو مخره کردن <تصفح> وقتی رسیدم به خونه این دقطت رو ساختم صبح براش فرزدم چکَل شده است سرم زیر تیغ سلمانی چنین بلا به سرم کاشکی نیامده بود بدین سری که ز تو چگونه زیست کنم به جای سر زدن این کاش گردنم زده بود باشه خب اولاً نوبت خیریتون باز اگه مطلبی در زمینه متایبه داشتید در فرصت مناسب خودتون بفرمایید انشاءالله غزل رو در آقادان بیاده بزمی که شبیه کنار شدتال عرب داشتیم بح بح ساختم اگه جدا رو بکنم خواهش بکنم هر زمان بر لب شدتال عرب افتد گذر من آردان منظره یک بار تو را در نظر من با تو روزی لب شط بودم و زن پس به همه شب بی تو شد دگری می رود از چشم تر من سهری پیش تو شب کردم و افسوس که آن پس روز ها رفت که بی تو شب شد سهر من شاخ هر نخل بری داده گو من نخل امیدم ندهد بر مگراندم که تو آقی ببریم من قمر و شمس به شکل تو در آیند به چشمه زان که دانند تو هم شمس منی هم قمر بریم خبرم هست که از خانه من با خبری تو خبرم نیست که بهرچه نگیری خبر من سو. رحم اگر بر من بی دل نکنی رحم به خود کن رحم اگر بر من بی دل نکنی رحم به خود کن زن که ترسم زند آتش به تو سوز جگر من در تو روزی اثری می کند این شعر ولی که دیگران روز نمانده است زمن جز اثر من دولت وصل نیاورده هنوزت به بر من لیک هجران تو آورده بلاها به سر من بس, بس انگیزشم که معلوم شد و هجران تو آورده بلاها به سر من همه چیز رو معلوم رو خلا باید که همراه با پنجه شیرین آقای شریف آقای رزایان دومی قطع شیر سرکار رو بخونم دو این چی آقای حالا؟ دو بومین شیرتون من دیه که قطعه ای بود که تحت انبانه چه کنم با دلخیش چه کنم با دلخیش؟ چون این دل خیلی بلاها به سر من اوورده این بود این قطعه رو ساختم و حالا میخواستم خواهش کنم از آقای رضاییان چی؟ خواهش مال مل؟ خواهش بادل خیش چه کنم بادل خیش آه آه از دل من که از او نیست به جز خون جگر حاصل من زان که هر دم فشنات جان مرا در تشویش کنم بادل خیش چه دل مسکینی چه قمین می شودن در قم هر قمدینی هم قم گرگ دهد رندش و هم قصه میش چکنم با دل در دلم هست حبست در دلم هست حبست در همه احوال به درد همه کس چه امیری متمول چه فقیری دربیش چه کنم چه کنم با دل لوریانی دید چشم گریان یا احوال پریشامیدید شد چنان ساخت پریشانی که مرا ساخت پریش چگونم بادل خیش دید بهرننا گرسن آن گونه که از جان شده سیر دل من سوخت برو تا جگر من شدریش چ کنم بادل خیش زارورم از دست دو چ کنم؟ زارورم از دست دو چ کنم؟ دل نگزارت که برم حمله بدو بس که مختات به بار آمده و دورندیش اندیش کنم با دل خیش یارد رفتم با مار نیست رازی دل من تا که از مار دمار لیک است که از او بخورم سطحانیش چه کنم با دل خیش دارد این دل اصرار دارد این دل اصرار که من امروز شوم بحر جهانی بمخار همه جا در همه وقت و همه را در همه چیز؟ چه کنم با دل خیش از برای همه چست از برای همه چست دل بیره در این دوره به کار آید و بست نرود با دل پر آتف کاری استیش چه کنم بادلخیش خب آقای الفت دیگه بعد از موقعی حالت که خیلی واقعا با... ساکت چون رعایت با... سنی رو ما می‌کنیم و... بنده با اجازه شما دو قطعه شعر دارم یکیش غزل و یکیش هم دو بیتیه که اولش خودم می‌خونم غزل و و دو دومیشم از آقای امیر نوری خواهش می‌کنم زحمت بکششمش اش کو طوار هانات از غم دنیا مرا گرمیان شعله ها سوزد ز سر تا پا مرا سر نهم بر سینه صحرا و همچون گرد دست و پا زنجیر سازد دامن صحرا مرا بال پروازم به دوش موج اشک عاشقی است مرغ طوفانم که پرواز نیست از دریا مرا همچه بوی گل که بلبل را برنگی زد زخاب میبرد موج نسیم بوسعی از جا مرا هرچه با گریزم زغم چون سایه آید از پیم هر کجا پنهان کنم خود را کند خیلی. پیدا مرا میربم از کوی او امروز و فردای دیگر امبر اگر مخلد دهد امروز تا فردا مرا چشمه را مانم که تون هر کس من سیراب شد میبرد از یاد و بگذارد به جا تنها مرا نیستم موجی که بر خود لرزم از بیم نسیم سیل بی تابم غم از سیلی دریا مرا بس که نازوک دل چشمم الفت از سودای خیش می خوناد خاموش آهی در دل شب ها مرا خب حالا آقای نوری دیگه سرکار باید که جور شعر دوم آقای الفت رو بکشید جور چرا رأی سنی خب بالاخره از زمان اومد ما نوری به دادمون بسیار از آقای شریف خواهش می‌کنیم که کمک بکنید موسیقی ساحلان شب در سکوتی و خیز تکیه بر آغوش دریا داده بود قوم تنی همگونه یاس سپید عکس ما بر روی آب افتاده بود ساحل آن شب با تنی سوزان و خشک خفته بود آرام در آغوش شب مرغ طوفان می سرود آهنگ عشق بوسه می‌زد بر لب خاموش شب اختران آسمان چشمک زران رنگ کال بر روی دنیا می‌زدند هر طرف مرغان به آهنگ نسیم مست و رقصان تن به دریا می‌زدند ما در آن شب خلوتی خوش داشتیم ما در آن شب خلوتی خوش داشتیم کس در آن خلوت به جز ما ره نداشت بهر را آشوب جار من نبود پرتو رخسار او را مه نداشت آرام و صاف بود چون گل گونهش رنگین ز شرم آتشم در بند بند تن فکند بوسه آن لب شیرین و گرم ناگهان بستم در آن شب چشم تا در آغوشش بیا دمیم از سر و رویش ستانم بوسعی بر گل رویش فشارم شبنم ناگهان چون باز کردم دیده را در کنارم آن مه زیبان نبود چشم من هر جا سراغ او گرفت آن مه خرشید رو پیدا نبود چشم من هر جا سراغ او گرفت آن مه خورشید رو پیدا نبود اور آنجا در دل دریای ژرف دیدم آن ماه شناگر را در آب تا ببینم پیکر اریام روی سوق دریا روح آدم باشتا بر لب ساحل دو چشمم خیره شد بر تنی روشندتر از رنگ بدور گشت از آن پیکره چون ماهتاب پهنه دریا مرا دریای نور ناگهان موجی زد و در هم شکست نقش مهم بر سینه بهر کبود آقابت دیدم در اون دریای شهر بود عکس ماه و ماه من نبود شیعر آقای بسیار لطیف بود مثل اینکه دوستان آمادهی دارن که آوازی بشنویم و سازیم خب آیگور پایگانی سرکارم دیگه زیاد بیکار نشینید و به تو آوازی برای ما بخونیم اما بفرمایید که چی آماده کردید برای ما؟ به چند بیت در مایه شوشتری و بخشتری و بخشتری باید خیلی جانسوز و پرحال باشه خب آقای شریف سرکارم که آماده هستید که با کمال میدید با اون ساز گلبتون آواز آقای گل پایگانی رو همراهی بکنید خیلی Hey. Thank <laughs> you. تشفشان ز هجران بر دلم حد می دانم که می دانم دلش با دیگران آقای بسیار لذت بردیم آقای گلپایگانی و آقای شریف هم خوب خواندید و هم خوب نواختید و هالی کرد ولی از اول برنامه تا به حال آقای بیژن ترقی اصلا صداشون در نیومد آقای ترقی بله شما چرا از صحبتی نفر بودید تا من استفاده می‌کردم بله مثل اینکه برای من دو غزل پیش بینی شده که غزل اول رو خودم می‌خونم و غزل دوم رو آقای رضاییان زحمت می‌کشن خواهش می‌کنم غزالای اسم چیست آقای ترقی یکی غزالی هست به نام حیرت حیرت بله و یک غزالی هست به نام الهی که الهی بله حیرت بله. رو خودتون میخونی بله بله خواهش ای دیده چنین محوه تماشای که هستی مه. ای سینه تو در آتش سودای که هستی ای خون من ای آتش افتاده به جانم جوشنده و توفنده دریاوی که هستی ای پای فرو تو در این ره تاریک جویاوی که و بادی پیماوی که هستی ای دل که به کف ساغر گلگون بگرفتی پیمان کش نرگس شهلاوی که هستی ای عشق من ای روشنی دیده تارم افتاده چنین سرو زمین سایی که هستی ای عقل من ای گم شده دروادی حیرت بستم تو را دیده تو جویایی که هستی ای عشق کراقی تو فراراه مناور دیوانه تو روشنگره شبهایی که هستی خب آقای شریف باید با زحمت بکشید باید. و همراه آقای رضایان برای شیر دوبوم آقیتنم اگر عشق باشد گناهی اگر عشق باشد گناهی الهی سراپا گناه هم الهی الهی در آتش کشیدند جان و دلم را در او تش کشیدند جان و دلم را سیاهدیدگان با نگاهی الا نشان ده رهه کعبه آشغان را به مجنون گم کرده راهی الاهی چو آوینه گیرد قبار ملالت دل درد مندم به آهی الاهی شدم زرد و افسرده از آفت عشق شدم زرد و افسرده از آفت عشق چو پجمرد شاخ جیاهی الهی شدم قرقه در بحر عشق و نیامد به یاریگ من پرکاهی الهی به شبهای تنهایی و تیر بختی فروزان دلم را به ماهی الهی به شبهای تنهایی و تیر بختی فروزان دلم را به ماهی الهی یکم شب شب به داد دل خستم رس چه غم آمده با سپاهی الهی به به موزی کلام در این ردیف قافیه قشنگه این نگاهی الاهی هر آدم فکر بونه هر قافیهی رو با این ردیف انتخاب میکده به این زیبایی نمیشد آی خیلی عشق شعیی بود برحال هم بود آهای ترقی آخو سراب ها شورحال خب خیلی متسکر ایم ترقی و دیگه نزدیک پایان برنامه است بنده در این هفته شعری ندارم ارز بکنم و شعر خودم رو میگذارم برای هفته آینده خوانندگان با احساس برنامه بزم شاعران به همین جا پایان میگیرد با همه شما خداحافظی می کنیم دلتان خوش و لبتان خندان باد